جاء في 26 الحمد لله والسلام على سيدنا محمد در که آیا قدر حاصل از مقدمات حولیه اونکیت داری همده بخشی که اخباری مهمت کردن و قایل شدن به عدم اونکیت قدر حاصل از قدرده عبریه و مقدمات عبری خود اخباری زاریده افراد و تفرید هم این مصدت اخبارگلی زاریده افراد و تفرید که از سبب امامیه اینا بروز پیدا کردن یعنی تعثر از اصافیدشون استاده از ترابادی که محققه اردبیلی و چه جامع المقاصن از یک طرف تورم بیش از حد علم اصول از زمان علامه که خیلی متوقف کرده علم اصولرو محقق اردبیلیهم در انظار فقهی تمام اجماعات رو و هر رو مناقشه کرد در خیلی از حتی دباری ها رو کرده لذا این فرقه یه اخباریه زاییه افراد و تنفیل از ثبت و یه ناهنجاری در مکتب ما حساب میشه یه اخباریه و اخباریگری ناهنجاریه با به هر تفسیری بگیریم منطقه بعدا تردیل شد تا اینکه رسید به اخوانیی مثل راوی مرنیسی که حدود کردن از اون که امین استرابادی داشته و روشی که پیگیری کرد. نظریات امین استرابادی من حیث المجموع شبیه به نظریات فلسفهی هسیه اسکرایی. یعنی همه چیز خلاصه میشه در مخصوصات یا اینکه از معصوم به ما برسه و شبیه به فلسفه حسی سیه خوبهاییه حالا یا اونها از این متحصد شدن یا ایش خودیشون از انظار اونها متحصد شده شبیه به یک ازگراهیه و ای و مجموعه در علوم مختلف قائل که انسان بخواد علم پیدا بکنه یا از راه حس یا از راه عقل اتا دارن که از آیات فلاسف حساب میشه من فقط هستم فقط فقط علمم از این حس نداشته باشه به همون مقدار علم نداره اینه اگر قوه خاصه باسره رو نداشته باشه به همین مقدار مدرکاتش کم میشه و حس سم و و امثالی هم. و حتی حس باکنی حالا ما کاری به اینها نداریم من حس و مجموع اختباری یعنی زایده یک فرص تنفیل اولا و شبیه به یک فلسطه ازگراهی ما دیگری ایدر گراهیش دیگری نوشته این میشه انسان رو منطبخ کنه و امین استر تیه از تیهی که در گرایش ما دیگری افتیار امین استر حالا چرا این شده با که در اصفهان در سونده در نجمع بوده آرائش شاسه پیدا کرده و خود آراشم در نهایت افراط افراط در این حد باعث میشه که تشکید بشه طرف مقابله و اوث بهیه و وهابیه امامین وهابیت شروع اینطور شد خب اونها از قرن هفتمی هجرا رو ولی از ترابادی در قرن 16می هجرا رو میزنه و این می‌کشه اونام کشیدن بعد وهابیت به این نحوه مدل نشد خلاصه احساس تحلیل از خوب نیست و از از علمان ما که همه علما بخون جدا بشیم این در یه ای خواستی بدیم بعد حالا در فتح و نداره ولی این خودمون طاقته جدا باخته بکنیم همه بدن ما خوبیم این اصلا خوب نیست و از ترابادی شاخصتونی حالا میخواد من حساب بشه می‌خواد من حساب نشه و کلای خوب نبوده حالش هم خوب نیست آرائش خیلی شباهتی به آرا امامیه نداره حالا ما اینها رو طبق که شیخ انصاری داره خواسته توجیه کنه کلمات رو و با لطافت خاص این رو ردش کرده یکی از مباحثی که در باب معرفت مطرحه راه های معرفت انسان به خداست و این باب منتقی میشه به همون مساله که بعضی ها قایدن به این که نطور و به عدد انفاظ خلاقه که در اون فیلم ماربولک هم میگفت این حدیثم فیلم ماربولک این سنده متبردر از اون. اون موقع بیگفتن مارمولک چندش شمون می اومد ولی الان میوید خیلی از طلب ها مارمولک هست خوب بود فیلم خوبی بود حالا این نطور و قیدن نا به عدد انفاس این روایتا نباشی واقعیت که از یک راهی به خدا میرسه یکی از, از راه انفاق میرسه یکی از راه خوش اختاقی میرسه یکی از راه درس کندن میرسه یکی از راه گناه میرسه اونقدر گناه میکنه آخرش توبه میکنه و پیمینیمان تایی شد بخواه یعنی <متحدث> حتی اینطوریه یعنی وا... از گناه نمیشه انسان ناامید باشه اون خاطر نبن نحصول داره داده که از افراد برد ناامید نشید به خوبام خیلی امیدوار نشید بنابراین از راه گناه هم شاید انسان برسه چون همه در مسیر تکاملن دیگه آخرش انسان به خدا میرسه منطقه ملاقات با خدا به صفات جمالش یا جدالش اون فرمی میکنه و همه خدا رو میبینه به همه به خدا دارن میرن راه های معرفت شناسی دید از این حکمتی که گفتن اینطور و باید الله و عدد انفاس قلاعه بلمای اسلام اومدن اینها رو بردسی از راه های مختلفی گفتن یکی از اون راه که صوفیگین میرن راه دوپومی و حسیگین میرن و اینها ها مرفوزه. این دوتا را که ما از راه صوفیگری و یا حسیگری به خدا برسیم این ها کلی قدیر راه هست که آنها مرفوزه در اعلام یکیش مذهب مشاه مال صغرات شاگرد افلاطون و از درس افلاطون فاصله رفت مشا ذا مشاع لاسطالح ولی افلاطون در مسیر خودش موند بعدا ترفتاری پیدا کرد به نام شیخ و مذهب اشاب تأسیس شد بعداً اینها رو تردیقش کردن با الفان اسلامی الفان عملی نظری به صرفت حکمت متعالیه در اونه حالا مشا اینها هر کدومه که رو دارم تقیم کنن انسان میخواد علم پیدا کنه یعنی طالب علم علم از کجا حاصل میشه افلا میگفت نیاز به سنخیت با مجرددات یعنی نیاز به تنظیب نفسه نیاز به اشتاقه حالا در کلماتیشون اشتاق نبود ولی خب همین ایده رو مطمئن میکرد که از راه اشتاق عل علم و نور و نیغز بحون به من یه خدا بایده علم بده علمانه میتونیم تنظیب صبرات مخالفت کرد گفت نه ما از راه استدلال میتونیم وارد بشین و استدلال و آورد به صورت قیاس و قیاسش به صورت چهار و اینها ها داره ب... معروفه به مواد دقیقه اینا رو همه شما میدونید می و بهترین راه برای استعدال رو شکل اول نیازی شکل اول نیازی بهترین راهه که نسینا هم طرفدار همین نظرمی در بر خلاف شیل اشتا ولی شیل اشتا طرفدار افلاطم شده گفت نهیم نیاز به اشتا. و علم افاظه ایه. برحق و من منر و قدس سوبر. سوبر علمی از عالم قدس نه. با شکل اول و اینها حاصل نمیشه باقییت هم همینه ما از شکل اول بسید بنابراین مکتب مشا یک مکتب ناتمامی فی نفسه دیگه بهترین شکل از اشکال شکل اوله شکل اول به معلومات ما چیزی اضافه نمی کنه دو, دو تا تا است. مثلا میگیم العالمون متغیرون خب داریم میبینیم علمی به علم ما در این سقره اضافه نشد بعدا خودمون چون می‌دونیم کل متغیرن حاضست اینم کبراه هست بعد نتیجه فرعالمون حاضست در این نتیجه چیز به علم ما اضافه نشد چونم سقره رو داشتیم میدیدیم هم کبرا ها رو میدونستیم که آوردین این کبراه دیگه بنابراین از لی به جزئی رسیدیم ما از طبقه دهم ده بیفتیم به حیات پیشرفت کردیم یا دستان میشکنیم؟ از مکتب مشا چیزی حاصل نمیشه حالا شاید این حرف رو به این سراعت از کسی نشنیده بودید ولی مکتب عرب نهایتش اینه شما از ایک که برات معلوم میای پایین ما از قبرا نتیجه گرفتیم حرکت از عام به خاص و این علم حاصل نمی‌کنه من هم سقرار رو هم قبرا رو می دونستم, دونستم. بنابراین علمی به علم من حاصل نکنم مگر اینکه کسی توجیح کنه کاری بنا نداریم علاقل تبدیل شکل اول از بهترین راه‌های قیاسه مکتب مشا و منطق عرستویی قایل به این که این منتج و علم ما از این را تولید میشه و شما تصدیق میکنید که از این علم حاصل نمیشه شما اگه این کبرا رو قبلا ندونید علم از کسی حاصل میشه شما کبرایی رو تطبیر کردی برای یه صغرایی از تطبیر کبرا بر صغرا علمی برای شما حاصل نمیشه مگر یک علم جزده نیاز به تحقیق داره چطور انسان مکتب مشهار رو انتخاب کنه. چطوری مکتب اشراق رو راه بره و بهش برسه و چطوری قاعده به حکمت ما الان کدو چی بگیم الان بیان بگیم مشای هستیم قائل بشیم به اینکه اشراقی هستیم یا حکمت مطالعه رو قبول داریم یا نه هیچ کدام یه راه چاره میره کدو بشه شما انتخاب میکن بنابراین باید اینها بردرسی بشه شکل اول در منطقه عرصتویی هیچ نتیجه نه حالا تا رسد به شکل دوم و سوم و چهارم که اصلا معکوس نتیجه میدن این شکل اولش من همه اینا رو میدونستم و چیدم و به یه نتیجه رسیدم علمی در مکتب مشاه گفتن حاصل نمیشه علمی فایده نداره من همه رو میدونستم بس علم جوزی حاصل شد علمی به معرفت من معرفتی به معرفت من اضافه نشد ما به یک کلی نرسیدیم ما یک مجردی رو کشف نکردیم ما از این راه نمیتونیم به چیزی برسیم چون دوتاش هم معلوم بود برای ما هم سقرا معلوم بود هم کبرا و اگر کسی بیاد بگه نه کبرا برای ما معلوم نبود از نتیجه مطلب تقنیم اما باید تصدیح کنیم هم سقرا رو میدونید هم کبرا تمامه تا نتیجه بگیریم نتیجه در شکل اول منطقه ارستویی حرکت از زیاد ز از آن به خاص تطبیق کبرا و سقراش علمی حاصل نمیشه مشایین مش حاصل نکردن نیست چرا ابن چینا خوب نباید باشه دیگه ما علمی, <تصح> علمی چینا این ها تطبیقه تطبیر و سقرایات علم اضافه نمیشه حاصل نمیشه حالا به حصب این خیلی ریشه داره بخلق. من خواستم اشاره کنم به اینکه چرا مکتب مشهارو میذارن یعنی این علم حاصل نمی کنم. من هر دو می دونستم هم سغرار و هم گوگرار رو امورا تطبیقش کردم قلع آلمان حادث ها آره دیگه با اونخواده گفتن این ندیم لا لایو صاحبه به دقون عقل نمی تونه چیزی به اثبات نمیکنه. کنه راه معرفت شناسی نیست و الا فلاسفه غرب خیلی تلاش کردن از قرن چهارم تا الان خیلی هم حرف بازدن ولی اونا به واقعیت درسیدن بخواد اینکه عرد لذا پای استقلالیان چوبیم بود اینه از یک آمی به یه خاصی رسیدن از یک کلی به یه جزئی رسیدن قبلا داشتیم دیگه نیاز به التفات داره یعنی یه توجه علم نیست محرفت حاصل نیشور آدم یه چیزی زایدی نشو. ما قبلا هبرون شما شما علم پیدا کردی که این مال شماست خب قبلا گفته بودن که هر چیزو این کلاست مال شماست حالا من با استدلال رسیدم که این مال من یعنی به یه جزئی علم پیدا کردم و قبلش تو کبرا گفته بودن دیگه در کبرا گفته بودن که کل متغیرن حادث آلم هم که متغیره خوب ما دیگه نتیجه نداره خیلی هر پختهیه نیاز به فکر داره شاید چندی سال اونهایی که عمر میذارن فلسفه می‌خونن، بدائی میخونن نهایی می‌خونن، سالها یحمل اسفارا اصفارا اسفار عربع رو هم می با خودشون اینها نمیدونن بابا از من حتی این بدیعات هم نمیدونن به خاطر که خوب تدریس نمیشه یعنی به عمق جان نمیرسه که با این شکل اولی علمی برای من حاصل نکرد زدار شیخ اشراق قائل شد به اینکه نه منطقه به درست نمی منطق منطقه به درست نمی کن. واقعیتش هم همینه منطقه عرزتوی مختلق و بعدش هم دیگه نیومدن کسی یه منطقی بنویسه نویسه اسلامی در باب معرفت شناسی اتا اینکه که ملا در حکمت و متعالیه راه های دیگه ای را آورد برا معرفت شناسی حتما لازم لازمیست از شکل اول باش. شیخ اشراق باعش شد به اینکه اشراق اونقدر باید صفای باطن پیدا کنی تا علم بر شما افاظه بشه این راه خیلی مطمئن و خوبیه به هر چیز ها نیست چیو؟ میگه کافی نیست عرض جوزیه و شده به اینکه این کتاب حکمت و اشتاق رو کسی بخواد بخونه چهر روز باید تهذیب نفس کنه یعنی چلده نشینی کنه بعد از چهر روز که در یه جایی چلده نشینی کرد برگرده و این رو با آدابش بخونه نه مثل ماها ماها فلسفه در عمق ماها تحضیب نمیذاره و خاطبی ما تحضیب نداریم حکمت متعالیه ممزوج سه چیزه مشا، اشتاق و ارفان هسته درشه و اینو ما لوسش نکنیم بدون تعدد به آداب این ها رو میخونن و ولا یزید و ظالمین اللحظان. این چیزی هاسته نمیشه میره از این قومدش باطل میشه زنبستش هم بهشتر آداب داره ایک مطل اشرار خود شیخ اشرار در مقدمش نگاه کنید نمیشتین نیاز به اشرار هست افاظه میخواید من اخل صلی اللہ هر و این, این روز اخلاص داشته باشه حالا در هر زمینه این این حکمت از دلش به زبان سیاری میشه اینا علم شهر اشتاق بهش اعتقاد داره و مولا سدان بهش اعتقاد داره ولی ماها بهش اعتقاد نداره میگیم نه اینطوری نیست وقتی 4 تا درس میره طلبه با موتور بینه با دو چرخه میره اگه العلاقم به طلابم سوال بیداد برانگه 3 تا درس بیشتر بردم من یه طلبه بود یه زمان میخواست زود به ساعت جا اینجا برسه دوره قبل درس خوندین دو درهام میندم در موتورش میبنده هواام سرت میگفتن بابا نریم این درسو نه میخواست بیاد میگم نه میخوام برسم اینا خلاص تو زحمت نیومد و بعدا دیدم سر از یه میلیاردی شارزا دست میره و با موتور مطور قرازو الانم بیرون نمیتونه بیاد بیاد بیرون گره دیگه <تصفيق> آداب داره اونایی که نمیخوام حالا تنگیز کنم شاید کسی نشنیده تنگیز نیست ولی درست هایی که با موتور به دست میاد اینا رو باس میبره به دست نمیخوام آدابش رو رایت کنید وزین برید درس بیایید این این فائده ایه با پروتون رو بگیری از این ور که دو تا درس بیشتر به چی می خورید یه دونه درس قرأ دو تا درس قرأ فرض صفرو بذارید یه مقدار ثابت راحت بشه بعداً بخون نیاز به تهذیب نفس داره بدایه‌ی آنمره رو به نکنید نمایهش رو نکنید خیلی اینا کتابای مهم میه حالا شیخ اشراق قائل به تهذیب نفس در حکمت متعالیه جمع کرد بین اینها و من قبلا گفته بودم که بخواهد حکمت و رو بخونه یعنی به دعایه ی عددان مرا رو بخونه اولین کتاب نجات حفیزین است که از محسوسات داره حرکت میکنه به طرف معبولات یعنی از شروعش داره محسوسات رو به خورده شما میده تا اینکه بعدا یه در هواپیما یه کنده میشه من یه شدم من یه بار شدم این هم اینطوریه. یه دفعه تو نجات از محسوس کنده میشه به محبوب حالا آره منتقل میشه آره این واقعیتی مثلا میگه شما داری میبینید داری لمس میکنید بعضی موقع درد داری درد احساسش میکنید این درد مجرد یعنی از محسوس منتقل میشه به معبود، بعدا اشارات خود ابن سینا دو دومین کتاب بعد از اینکه دو دوتا کتاب تمام شد نوبت میرسه به حکمت الاشتاق سونید دو تا کتاب با حکمت مشتاق سه حکمت الاشتاق بعد از اون کتاب های ارفان نظریه تمید القواهد ابن ترکه با خصوص اینا رو برکنن بعد از اینها نوبت میرسه به ودایه بعدی آزا بشته بخونه و نکنن یا ترتیبش و آیت نکنن خواهده این حالا در حکمت مشاق و منطقه عرصوی قاعده به اینکه این شکل افتر کنتجه و علم حاصل میشه حکمت اون اشتاق هم که قاعده به اینکه از اشتاق علم حاصل میشه حکمت متعالیه قاعده شده به اینکه نه از عرفان نظری و عقل و اشتاق حدثه خواهم تا آفوتی قرآن و قرآن و الفان یه چیز میخواد بگرد یا با هم جدا نیستم حالا هر هایی که اینا مقدمه بود یعنی معارف بشری تقسیم میشه اون مسالک که مقبولش این چهارتا مشا، اشتاق، الفان اسلامی با حکمت مطالب این چهارتا راه. و غیر اینها ها مقبوله مثلا منتج نیست صوفیگری منتج نیست حالا این مقدمه برای اینکه که حالا از ترابادی چی میخواد بگیم از ترابادی در حیطه خودمون میخواد حرف بزنه ما نمیخواد بگیم اینشون ما رو میخواد علم کنه نه بگه در بهش نمیشه از عدله عبری استفاده کرد. و اومده گفته ما قیاساتی که میخوایم بچینیم در منطق ارسطویی به علم برسیم این مواد قیاسات خب قیاس برهانی داریم قیاس جدلی داریم قیاس شدی داریم و پنج قیاس معلومه در قیاس برهانی مواد دقیصه که اینها رو خوندید و منطقه از اصلا متشکل از منطقه سویی یعنی اشکال رو یاد میده و منطقه مادی مواستش رو یاد میده بروهان باید از چی باشه؟ از یقینیات باید باشه شعر باید از چی باشه؟ از مخیلات باشه با اون خاطر میگن احسن و بو اکزب. بهترین بهتری شعرون دو بفتری میشه به با خاطر مخیلات باید باشه همین از سرابادی میگه در منطقه عرصتوی اون قیاسی که میخواییم بچینیم به یک علمی برسیم به نتیجه برسیم این ماده قیاس ما یا حسیه یا غریب از اون یا قرید از اون مند, از اون مند حسی مثل چیزهایی که ما داریم حس میکنیم یعنی داریم میبینیم داریم لمس میکنیم داریم در ظاهقه احساسش میکنیم اینا جزء مواردی که مواد تشهستیه محسوس انسانه چه محسوس به حس ظاهر باشه حواس خمسه ظاهر و چه محسوس به حس باطن باشه که وشدانیات بشنگن مثل اینکه درد رو انسان احساس می کنه گرستنگی، تشنگی و همسال اینها رو انسان احساس می کنه اینها محسوسات محسوسات یقیناً خطا و اشتباه نیست در, در نظر امین اثرابادی. در نظر امین اثرابادی خطا اشتباه نداره. به که اختلافی آیا محسوسات ما خطا اشتباه داره یا نداره و مطابقت با واقعیت دارن یا ندارن اختلافی چهار تا نظریه در کش که بعدا مرتضش میشیم. ولی کل حالا کله‌ها امین اثرابادی قائل که این محسوسات مطابقت با, با, با, با. و محل بحث نیست خطا به اشتباه در شد. انما کلام در متبیه قریب به و بعید به این یعنی نیات که عبارت باشه از اولیات، فتیات، محسوسات، حسیات، مجربات و متواصرات. دو تای اولی جزء مخصوصات دو دوتای اولین جوز محسوساتیه که میگه ماده یه حسی داره اون از محل برس خالده دید اونا جوز ضروریات و غول همه در ذهنشون از دن حاضره لازم به التفات هم از تا نیست اولیات و فتریات میره کنار میمونه چهار تا این چهار تا رو که جوز یقینیاته یعنی همون سه گمی، چارمی و پنجمی و ششمی اینها رو در اصطلاح امین از سرابادی قریب و تومنه دوتای اولی محسوس به حس باطن و این چهارتا قریب و تومنه دیستن مدعای از سرابادی اینه که احکام اول در ضروریات اولیه یعنی اون قسم اولیات و فتر و اون مواد غریبه از حس قطعیت داره و هیچ مانه درش نیست که جمعا میشه یقینیات سکتی که جزء مواد برهانه قیاس برهانیه ولی از اینها که بگذاریم نوبت میرسه به قیاساتی که موادشون بهیدتون منده است مثل اثبات حرکت جوهرین مثل اثبات حدوث آلم یا قدم عالم مثل اثبات رهدانیت خاله و امسال اینا, اینا بعیدت من نیست اینا رو کسی تا بی سال درست مولا سد نره نده نبیتونه از آن کنه اینها رو گفته اونایی که بعیدت اومنه نحسه اینا حجیت نداره یعنی کس در این موارد رو حجیت نداره چرا به خواهد این که خطاب اشتباه در از دیار؟ بنابرای یقینیات سفر رو از محل بحث خارج کرده یعنی اون محسوسش و قریبتون مننه هستش که جمعاً میشه شیش خست اونها از محل نزا خارج کرده مونده اونهایی که بعیدتون مننه هسته حالا در یه تقسیم دیگه تقسیمی داریم در رابطه با تقسیم حکمت حکمت چیه؟ حکمت دو تا تعریف داره. علم انسان به احوال موجودات علا قدر طاقت بشریه علم من به احوال موجودات که وجود مطلق باشه مثل خدا و چه سایر ممکن ؟ اینه میگنه حکمت یه تعریف دومی هم داره سیرولت الانسان آلماً عقلیاً مزاهیاً دل آلم الانی. انسان اونقدر معلوماتش بالا بره که جهانیست بنشسته در گوشه اما چیزی در ذهنند مزاحی عالم عینی و آلمینی در ذهن شاذره این نهایت حکمتی. که این حکمت که معصومی این نو حکمت را دارند سیروت الانسان عالم انعلیان مزاحیند عالم عینی یعنی تمام ابوالیم وجود تحت سیطره انسان کامله به خاطر اینکه حکیم مطلق که در معصومی این هست که تمام ممکنات تحت سیطریان ها هستن این تعریف حکمت، هست. حالا علم حکمتی یعنی هم که ما میخونیم برای رسیدن به این مقامه حکمت که میخونن برای رسیدن به این مقام لذا هاچی سبزواری در همون منطقش یکی مصره داره من یه زمانه استاد گفتن داره منطق میگه یه دقیق داشتم که بیا بریم منه اوملی من و خان تدریسطور موط نبود جان که خواب بیا بود. اومد و شروع کرد و رسید به این ممثل حالا ما میش مطالعه کرده بودیم که بهند تم از زمان و مکانون ده بود یکی از ممثلح هایی که حاجی در عالی منتظم آورده در قت منه، که بهند تم از زمان و مکانون ده یعنی با این علم منه انسان اونقدر میکنه آخرش به یککمت میرسه، وقتی به حکمت بالای میرسه این طب از زمان و مکان و لب. زمان و مکان دیگه در سیطره انسان انسان مثلا تیال پیدا میکنه و زمان پیدا میکنه این تر... ترجمه شد تا اینه ولی اون استاد یه چیز دیگه ترجمه کنه این مطالعه نکرده اصلا منطق نخونده شما بخواه منطق بگید این استاد خصوصی خوب نیست استاد خصوصی مطالعه نمی کن. یعنی قایت و قایات منطق و حکمت اینه به همتر از زمان و مکان و برای انسان حکیم زمان و مکان جمع میشه در سیتره انسان حکمان که برای ارنامه به نظر من همونطوری بوده انسان دیگه در گیر زمان و مکان میشه این نهایت حکمت این. که انسان به این مقام برسه حالا تقسیم کردن حکمت رو به دو قسم حکمت عملی و حکمت نظری یه کتابی از ها اگه پیدا کنن اندیشه های مدینه فازله کتاب مال فارابی ترجمه شده چه چه سال پیش ترجمه شده اندیشه های مدینه فازده. در اون کتاب حکمت رو اینطوری تقسیم کرده که تقسیم میشه به دو قسم حکمت عملی و حکمت نظری حکمت قسمت عملی خودش سلسله میلارا معروف به خوندن در علم اخلاق که یکی تهذیب نفس اولین مرحله تهذیب نفس مرحله دوم تدبیر منزل و مرحله سوم سیاست مدن که از نفس شروع میشه تا به سیاست مدن برسه یکی از موارد مثلا می‌بینید بعضی‌ها تدبیر منزل ندارم. اصلا مشتق بر امور زندگی خودشون هم تا نیستن این برگشتش به رتبه قبلش یعنی تهذیب نفس کافی نیست ایثار نداره آدمی که ایثار داشته باشه بازنش اختلاف نداره اختلاف به خاطر عدم ایثار عدم جوانمردی عدم فتووت عدم مروبت اینا نیست به اختلاف میشه اختلاف نفس و اختلاف معنا نداره تهذیب نفس کماها و حقو محقق نمیشه در تدبیر منزل میمونن با اون خاطر زندگی ها مستعصل میشه بعد مشکلاتی آرز میشه اون مشکلات فکر انسان رو برمیگرد الان ملا را در زندگیش انسان سهی بکنه این اصلا تا به این همه مشکلات نشده مشکلات بیاد این شخص و بشکنه اینطور نبود انسان باید اونقدر قادر باشه اونقدر اراده داشته باشه مشکلات رو بتونه بشکنه به حریف مشکلات بشی سمیگه چرا از بوم رفتی مشکلات زیاد. چرا دیگه دست نمیری مشکلات زیاد. تمام این مشکلات قالب شدن من این شم. این در تدمیر منزل در تحضیب نفسش مونده تا چه رسد به سیاست مدنش و در یک جامعه بالاتری این حکمت عملی اما حکمت نظری حکمت نظری متشکل از سه علم، ریاضیات طبیعیات و الهیات ریاضیات و طبیعیاتش خب ریاضیات مطبط به اعداد و ارقام این هاست. خودش چهار تا علمه خود ریاضیات، چهار تا علمه که هندسه یعنی اندازگی دید حساب حیعت و موسیقی موسیقی اسلامی و شرمی و حلال موسیقی خودش شاخه های الان چرا اینقدر مشکلات زیاده به خاطر که موسیقی واحعی نداره انسان بعضی از موارد خستگی ها اونقدر پشار میاره که با یک موسیقی تمام خستگی شاید از ذهن به ولی نیست یه تحجر پیدا کردیم تحجر نمیذاره مثلا موسیقی همش حرامه اونطوری نیست موسیقی خوب مفیده بعد اینها باعث میشه جمع میشه جمع میشه جمع میشه بعد یه دفعه کار دستیش موسیقی از شاخه های و ابن سینا میگه من در علم حکمت همه رو تونستم فتحش کنم ادا موسیقی دان به خاطب مشکل یه شخص واقعا موسیقی دان باشه بعد میگه خارابی مسلطه ولی ابن سینا مسلطه و خیلی از مریدی ها رو با موسیقی میشد مداوا کنم لازم به نبود از این دکتر به اون دکتر هی hey, حواله بدیم باز هفته بعد بیا من ببینم ات. به حاطقی روی پول حساب کردن دکتر نیستن دکتری که برای پول مریضو میبینی از شفا در دستش نیست دکتر نباید پول بگیری مایه یه در جامعه اسلامی که یک دکتری مثل افنسینا ندار که بشینه مداوا کنه به خاطر خودش. این همه مریضی زیاد و اصلا بریز میکنن افراد رو میگه این دردش ما درمان نداره حالا این قسمت ریاضی بعد طبیعیاتشه که موضوعش جسم، بعدم الهیات به معنای اخصه و اهم مربطه شامل همین بحثان میشه از وجود عدم گرفته تا برسه به الهیات به معنای اخصش در تمام مراتبش اینو میگن حکمت عملی و حکمت نظری حالا نظر امین از ترابادی از این که گفته علوم نظریه تقسیم میشه به سه، یا حسیه یا قریبتون من یا بعیدتون مننحسه حسی همین محسوسات رو داره میگه قریبتون مننحس ریاضیات و طبیعیات رو داره میگه و بریدتون منالهست الهیات به معنای اهم رو داره میدید. یعنی تمام فلسفه اصطلاحی این روز. این بریدتون گفتیم به درست نمیدونه. ما در علم و نمیدونیم به مقدمات عقلیه صدراحیه اعتنا کنیم. چرا؟ به که خطا اشتباه در اشتیار حالا یک نکته اساسی من بگم این نتیجه که از تراوادی گرفته این نتیجه طبق قول خودش مترتب نمیشه یعنی خودش داره میگه که کسرت خطا و اشتباه در علوم نظری هست بعد ما معیاری برای تشخیص نداریم و هر چیزی که خطا و اشتباه در زیاد باشه به درد دلیلیت نمیخوره اون اولی که گفته که صرف خطا و اشتباه داریم و میبینیم خب اون حجد حسیه قبول میکنیم ازش دومی دو که اومده گفته معیاری برای تشخیص عقلات یا از چیزهای صحیح نداریم اونم میگیم باز حسیه ازش قبول میکنیم ولی سومی چیزی که گفته خودش عقلیه گفته ماکس و ر دی خط او اشتباه ولا یکولت دلیگرین قللی بنابرا حرف خودش رو خودش داره باات نمیکنه. پس نمیشه بهپذیر از این هر چیزی خطا و اشتباه در یاده به درد دلیلیت نمیکن به خاطر که این خودش قاعدتون عقلیه و قاعده اقلی هم به نظر خودش خطا و اشتباه داره بنابراین این حرف از خود از تروادی نمیش قبول کنه این یک، جواب بعد از ترابادی متنش رو آقایون خودشون بخونن وقتی این توضیحاتی که دادن متنش واضح میشه بخونید مباحثی کنید تا اینکه از از خارج کتاب میخوام بگیم به اونا هم برسیم بهتره که ما متن رو ترجمه کنیم این قسمت رو خیلی ثمره‌ای نداره همه همین چیزی که الان از ترابادی در مصلوخته من از بیرون گفتم تدبیرش هم با شما تا وقت باقی بمونه برای این که از بیرون میخواهم بگیم که طلبه ها یه راهی برای تفکر خودشون پیدا کنن که نسبت به این مسائل چی میخواهم بگن بعد نهایتش هم ما قول امین از ترابادی رو رد نمیکنیم که بیان بگیم یا محسوس یا غریبتون منالهز یا بعیدتون منالهز این رو به دردن نه اینها رو میگردونیم به یک شکل مصوری یعنی از این حالت منطقیش در میاریم میشه یک قائله اصولی قابل استفاده در همه موارد بنابراین از الان ما حرفش مطلقا میخوام درد کنیم ولی اگر در این وجهه خلصه بمونه به همین حالت منتهی بمونه اشتالات که ما سندل یا اون اشتالی الان ما بهش گفتیم و بعد میگیم اونها برش حاله ده حالا فردا که تعطیله امروز هم حالا مدرسه 23 این فردا چهارشنبه نمیدونم چیکار کنم هست یا نیست اینا chat برن مطالعه مباحثه بکنن بهتره میام آره دست نباشه ولی برای 80 تا هم میام یاره رفت